به کوی میکده یا یارب سهر چه مشغله بود که جوش شاهد و ساقی و شم و مشعله بود حدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیست به ناله دفنهی در خروش و ولوله بود مباحثی که در آن مجلس جنون میرفت و رای مدرسه و غال و قیل مسئله بود دل از کرشمه ساقی به شکر بود ولی زن ناموسایدی بختشندکی گله بود قیاس کردم و آن چشم جادووانه مست هزار ساحر چون سامریش در گله بود به گفتمش به لبم بوسه‌ای حوالت کن به خنده گفت کیت با من این معامله بود ز نظری سع در ره هست که دوش میان ماهور و خیار من مقابله بود دهان یار که درمان درد حافظ داشت فغان که وقت مروت چه تنگ حوصله بود